رکایت اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوک پیشین را خزائن و عمر و لشکر بیش از این بوده است و چنین فتحی میسر نشد گفتا به اون خدای عزوجن هر مملکتی را که گرفتم رعیتش نیازوردم و نام پادشاهان جز به نکوگی نبردم، بزرگش نخوانند، اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد.